حضرت زهرا سلام الله علیه ها که اون همه دل شکسته است اون همه رنجوره اون همه زده است از امت اما در عین حال لحظات آخر به علی میگه علی جان سلام مرا به فرزندانم برسو حالا میخواییم با این مادر بیایم خدمتون مادری که این درسم به ما آموخت در دفاع از امام زمان علیه السلام هیچ چیزی نباید مطرح باشه فاطمه است ملکه عالم وجوده دختر پیغمبر خداست دختری که خدا به پیغمبر میگه به داشتن این دختر مباهات کن حالا میاد وقتی میبینه جان امام زمانش در خطره میاد پشت در قرار میگیره میگه تا زهرا در اینجاست نمیذاره دست شما به علی به امام زمانش برسه میگن پس باید دست زهرا رو کوتاه کنیم عمر به قنفز و مغیره میگه چرا معطلی اول لگد به در میزند زهرا پشت در قرار میگیرد. بین در و دیوار پهلوی زهرا می شکند. به زمین افتاده است وارد خانه می شبن. مرحوم علامه امینی می نبیسد. وقتی غلاف شمشیر رو که به گردن حائل میکنن که شمشیر رو درش قرار بدن بندی دارد تنابی دارد این تناب و بند غلاف شمشیر علی گوشه حیات بود اینو برداشتن به گردن علی انداختن و علی رو کشان کشان به سوی مسجد ببرن وقتی به آستانه در رسید زهرا اگرچه بین در و دیوار افتاده میگه نباید امام زمان رو تنها گذاشت دستش رو دراز کرد دامن علی رو گرفت. اخه زهرا کف علیه علی یدالله زهرا هم یدالله هرچه علی رو می کشیدن در اثر نگهداری زهرا نمی تونستن عمر گفت قنفذ دست زهرا را کوتاه کن غلاف شمشیر تهش رو سربی قرار میدن که اگر محکم به زمین خورد بر نگرده شمشیر توشگیر کنه با این گلوله سربین ته غلاف اونقدر به دست زهره صدم فزه میگه یه وقت دیدم دست زهره از دامن علی جدا شد زهره از هوش رفت علی رو به مسجد بردم فزه میگه یه وقت زهرا چشوا کرد اولین سوالش از من این بود فزه با علی چه کرده؟ گفتم بی, بی جون علی رو به مسجد بردم فرمود زیر بغل منو بگیرید منو به مسجد ببرید بذارید شب آخر میخویم خدمت امام زمان عرض ادب کنیم یک کمی طول کشید عب نداره زیادم نه عبدالزهراه این کسی که عاشق و دلباخته ی مکتب اهل البیت بوده میگه یک سال ایام فاطمی یه خیلی گریه کردم خیلی روزه خوندم خیلی اشریختم اما یه شب خواب دیدن آقا امام حسن و امام حسین رو به من فرمودن عبدالزهراه چرا روزه ما را در این ایام نمی گفتم فداتون بشم من که تمام عمر روز خون شما هستم منظور از روزه شما چیه؟ فرمود چرا به شیعان ما نمیگی وقتی مادرمون پشت در افتاده بود پدرمون رو به سوی مسجد میبردن ما منده بودیم این وسط آیا به کمک مادر برخیزیم یا به کمک پدر اما زهرا به فضل مرا به کمک علی بر علی تناس زهرا رو وارد مسجد کرده وقتی پشت پرده رسید دید علی رو زیر منبر نگه داشتن. شمشیر بالا سر علی گرفتن تا زهرا این حالت رو دید علی رو آزاد میکنید یا نفرین کنم به خدا از ناقه سالح کمتر نیستم سلمان میگه والله تا زهرا اسم نفرین بود دیدم مسجد داره میلرزه علی از زیر شمشیر امام مزهر رحمته گفت سلمان به زهره بگو نفرین نکند هدی باقی نمیمانه دوان دوان اومدم زهره جان علی میگه نفرین نکن آقا میگه چشم برگشت اومد خونه اما من خیال میکنم وقتی برگشتی گفت گفت اینجا بیا زیر گلو که ببوشم شاید برگشتن به زینب فرموده باشم دخترم خودت رو برای اسارت آماده کن اما دست از امامش بر نداشت اون لحظات آخرم وصیت‌هاشو کرد یه وقت چشماش دخمه علی شروع کرده های آیه‌ای کردن علی میگه زهرا جان برای بچه‌ها نپدری چون تو دارن برای جوانید ندارم میرم پیش بابات برای چه اخ علی برای تنهاییت در بیان این مردم عشق میریزم